گلدربر و میدرکف و معشوق به کام است. سلطان جهانم به چون این روز غلام است. گوشم میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماهر و دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است ولی که بیروی تو ای سر به گلنده هم حرام هست گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است در مجلس ما عطر می که ما را هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشام است از چاشنی قند مگوهی جز شکر زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است تا گنج قمت در دل ویران مقیم است همواره مرا کوی خرابات مقوام است از ننگ چگویی که مرا نام زننگر است و از نام چه پرسی که مرا ننگ زنام زن است میخاره و سرگشته و رندیم و نظرباز وان کس که چما نیست در این شعر است با محتسبم عیب مگویید که نیز پیوست شما در طلب عیش مدامه است حافظ منش این بیمه و معشوق زمانی که یام گلو یار زمن و اید سیامه